اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و, و بعد از او برقومش هیچ لشکری از آسمان فرو نفرستادیم و ما فرو فرستنده نبودیم إن كانت إلا صیحة واحدة فإذا هم خامدون بلکه كیفر آنها جز یک بانگ مرگبار نبود پس ناگاه همه خاموش شدند یا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ای افسوس بر این بندگان هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردند <الم> كم أهلكنا قبلهم من القرون انهم إليهم لا <يرجعون> آیا ندیدند که پیش از آنها چه بسیار نسل ها را نابود کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز نمیگردند؟ و این کل لما جمیع لدینا محضرون و همه آنها برای حساب نزد ما جمع و اهزار می شوند و آیت لهم الأرض المیتت احییناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون و زمین مرده برایشان نشانه و عبرتی است که ما آن را زنده گردانیدیم و دانه ای که از آن میخورند بیرون آوردیم و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون و در آن باقهایی از نخلها و انگورها قرار دادیم و در آن چشمه هایی جاری ساختیم لیأكلوا من ثمره و ما عملت و افلا یشکرون تا از میوه آن بخورند در حالی که دست آنان در تولید آنها هیچ دخالتی نداشته است آیا سپاس نمیگویند سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون منظه است کسی که همه جفت ها را آفرید از آنچه زمین میرویاند و از جنس خودشان و از آن چه و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فا هم مظلمون و شب نیز برای آنها نشانه و عبرتی است ما روز را از آن برمیکشیم پس آنگاه همه در تاریکی فرو می و الشمس لمستقر مستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم و خورشید نیز که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است این تقدیر خداوند پیروزمند داناست والقمر القمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم. و برای ما منزلگاه مقدر مقدّر کردیم تا چون شاخی خشک و کهنی خرما باز گردد. لا الشمس ینبغی لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق وكل فی فلك یسبحون نه را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی میگیرد و هر یک در مدار خود شناورند و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون نشان دیگر برای آنان این است که فرزندانشان را بر کشتی پربار سوار کردین و لهم من مثله ما یرکبون و مرکب دیگری همانند آن برای آنها آفریدیم که سوار میشوند و این نش فلا صریخ لهم خوری هم ينقذون. و اگر بخواهیم آنها را غرق میکنیم پس آنها را هیچ فریاد رسی نباشد نه آنها رهایی یابند. إلا مننا الى حين. مگر این که مگر اینکه رحمتی از سوی ما شامل حال آنها شود و تا زمان معینی از دنیا بهره بگیرند و قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفكم لعلكم ترحمون و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه پیش روی شماست و از آنچه پشت سر شماست بترسید شاید مورد رحمت قرار گیرید اعراز می کنند. و ما من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نیاید مگر آنان از آن روی بگردانند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 و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزی داده است انفاق کنید. کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند میگویند. آیا ما کسی را تعام بدهیم که اگر خداوند میخواست خود به او تع میداد و شما جز در گمراهی آشکار نیستید؟ ويقولون متى هذا الوعد این كنتم صادقين و میگویند اگر راست میگویید این وعد عذاب کی خواهد بود ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم هم آنها جز انتظار یک بانگ مرگبار بار نمی کشند که آنها را فرو گیرد در حالی که سرگرم جدال و دشمنی هستند فلا یستقیعون توصیتا ولا الى اهلهم یرجعون پس در آن وقت نمی توانند وسیعتی کنند نه به سوی خانواده خود بازگردند و انفخ فی الصور فاذا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون و چون بار دیگر در سور دمیده شود پس ناگهان آنها از قبر بیرون آیند شتابان به سوی پروردگارشان می روند قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون گویاند وای برما چه کسی ما را از خوابگاه مان برانگیخت به آنها گفته شود این همان است که خداوند رحمان وعده داده بود و پیام بران خدا راست گفتند. این كانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. آنجوز یک بانگ مرگبار نخواهد بود، پس ناگهان همه نزد ما جمع به هزار میشوند شوند. فاليوم لا تظلم نفس شیئن و لا تجزون الا ما کنتم تعملون پس امروز به هیچ کس ای ستم نخواهد شد و جز به آنچه عمل می کردید جزا داده نمی شوید این اصحاب الجنة اليوم في شغل فاکهون بی اهل بهشت امروز در کاری لذت بخش مشغولند و شادمان هستند هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکعون آنها و همسرانشان در سایه هایی بر تخت لهم زده اند.لههم ولهم ما وله برای آنها در آن بهشت انواع میوه است و هرچی که بخواهند برایشان فراهم است. سلام قولاً من الرحيم به آنها گفته می شود سلام بر شما باد این سخنی است از جانب پروردگار مهربان انتز اليوم ايها المجرمون اي گناهکاران امروز از نیکان جدا شوید لم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ای فرزندان ادم آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکار است وأن اعبدوني هذا صراط مرا بپرستید این راه مستقیم است ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تعقلون و به راستی او گروه زیادی از شما را گمراه ساخت آیا اندیشه نکردید؟ هایهی جهنمون لتی کنتم توعدون این همان جهنمیست که به شما وعدداده می شد اصلاوها اليوم بما کنتم تکفرون امروز به سزای کفری که ورزیده اید به آن درآوید. الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ایديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. امروز بردهان هایشان مهر مینهیم و دست هایشان با ما سخن میگویند. و پاهایشان به آنچه میکردند قواهی میدهند. ولو نشان لطمس نا علی اعیونیم فاستبق الصرات فأن يبصرون. و اگر بخواهیم چشمانشان را مه و نابود میکنیم، پس شتابان آهنگ راه میکنند. اما چگونه می توانند ببینند؟ ولو نشاؤل مسخناهم علی مكانتهم فما استطاعوا مضیون ولا یرجعون. و اگر بخواهیم آنها را در جایگاهشان مسخ و میخکوب می پس نتوانند که به پیش قدم بردارند. و نه به عقب بازگردند ومن نعمره ننكسه فی الخلق افلا یعقلون و هر کس را طول عمر دهیم در آفرینش دگرگونش کنیم و به حالت ناتوانی کودکی برمیگردانیم آیا اندیشه نمیکنند و ما علمناه الشعر و ما ینبغیله إن هو إلا ذكر و مبین ما هرگز شعر به او نیا ایم و شایسته او نیست این کتاب چیزی جز اندرز و قرآنی روشنگر نیست لينذر من كان حيا ويحط القول على الكافرین تا هر کس را که زنده دل باشد بیم دهد و سخن حق بر کافران ثابت شود اولم يروا ان خلقنا لهم ما عملت فهم لها آیا ندیدند که ما برای آنها از آنچه ساختی دستهای ماست چهار پایانی را آفریدیم، پس آنان مالک آن هستند وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها و آنها را برایشان رام کردیم پس بر بعضی سوار میشوند و از گوشت بعضی میخورند ولهم فیها منافع ومشارب افلا یشکرون و برای آنها بهره دیگر و نوشیدنیها در آن حیوانات است آیا سپاس نمیگویند دون الله آلهتا لعلهم و آنها غیر از خدا معبودانی برای خود برگزیدند به این امید شاید کیاری شوند؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون آنها قادر به یاری ایشان نیستند و آنان برای این هالهشگری احزار شده و آماده هستند فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما وما پس ای پیامبر سخن آنان تو را غمگین نسازد بیگمان ما آنچه را که پنهان میدارند و آنچه را که آشکار میکنند میدانیم. اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفت فا هو خصیم مبین آیا انسان ندیده است که ما او را از نطفه ای پس او ستیز جویی آشکار شده است و لنا مثل او و ننس خللق قالموحی العظام و رامی و برای ما مسلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت: چه کسی این استخوان‌ها را دوباره زنده می‌کند در حالی که پوسیده استقل یوحیللی؟ وهو بكل خلق علیم. بگو همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را پدید آورد و او به هر آفرینشی دانست. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون همان کسیک از درخت سبز برای شما آتش پدید آورد پس آنگاه شما از آن آتش می افروزید. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم آیا کسیک آسمان ها و زمین را آفریده است نمیتواند همانند آنها را بیافریند آری می تواند و او آفریننده داناست. انما اراد يقول له كن فيكون جز این نیست که فرمان او چون چیزی را اراده کند این است که به آن میگوید موجود شو. پس بییدنگ موجود می شود وصبح حللی بیادی ملکووت پس منظه هست کسی که پادشاهی همه چیز در دست اوست و همه به سوی او بازگردانده می میشوید. بسم الله الرحمن الرحیم وصافت صفا سوگند به فرشتگان صف کشیده فزاجرات زجر پس سوگند به فرشتگان باز دارنده طاليات و تلاوت کنندگان ذکر اِنَّ اِلَاهَكُمْ واحد که همانا معبود شما است. رب السماوات والارض وما ما بینهما و رب المشارق پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشقها إنا زینا السماء الدنیا بزینتنی الكواكب بیگمان ما آسمان دنیا را به زیبر ستارگان بیاراستیم وحفظا من كل شیطان مارد و از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم. لا یستمعون الى الملئ الأعلی ویقذفون من كل جانب تا به سخنان عالم بالا گوش فرا دهند و از هر سو به وسیلهٔ شهاب زده و رانده میشوند دحورا ولهم عذاب واصب آنها به سختی عقب رانده میشوند و برای آنها عذاب دائمی است الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب مگر کسی که ناگهان چیزی را بروباید پس شهابی درخشان او را دنبال میکند فاستفتيهم ا هم اشد خلقا ام من خلقنا اینا خلقناهم من طین لازب پس ای پیامبر از آنها بپرس که آیا آفرینش آنها سختتر است یا آفرینش آنچه ما آفریدیم ما آنها را از گل چسبنده ای آفریدیم بل عجبت و یسخرون بلکه تو از انکار آنها در شگفت شدی و آنها مسخره می کنند و اذا ذكروا لا به هنگامی که پند داده شوند پند نمی پذیرند و اذا رأم به هنگامی که معجزه ببینند آن را مسخره می کنند. و گفته‌اند: این هذا إلا سحر مبين و میگویند این جز جادویی آشکار نیست. اگر متنا بودیم و کنیم ترابا و عظاما ا انا لمبعوثون. آیا هنگامی که مردیم و به خاک و استخانهای پوسیده مبدل شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد او آیا نیاکان نخستین ما نیز برانگیخته میشوند قل نعم و بگو آری و شما خار و زبون زنده می شوید فَإِنَّمَا فا هِيَ زَجَرَتٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا فا هُمْ يَنظُرُونَ پس آن تنها یک بانگ سهمناک است ناگهان آنها از قبرها بیرون میآیند و می نگرند و قالوا يا ویلنا هذا يوم الدین و گویند وای آی برما این همان روز جزاست هذا یوم الفصل الَّذِی كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُون آری این همان روز داوری است که شما آن را تقزید می کردید احشروا ظلموا و ازواجهم و ما كانوا يعبدون. به فرشتگان فرمان داده می گرد آورید کسانی را کستم کردند و همپایگان و همراهانشان و آنچه را می به جای خدا من فهدون الله فهدوهم الى صراط الجحيم پس همه آنها را به راه دوزخ هدایت کنید وقفوهم انهم هم مسئولون و آنها را نگاه دارید که یقینا باز خواست خواهند شد ما لكم لا شما را چه شده است که یکدیگر را یاری نمی دهید هم یوم مستسلمون بلکه آنها امروز همه تسلیم و فرمانبردار هستند؟ وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ آنها سؤال کنان رو به دیگر کنند قَالُو اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ به سردمداران گویند راستی که شما برای گمراه کردن ما از راه خیر خواهی به نزد ما می آمدید قالوا بل لم سردم سردمداران در پاسخ گویند بلکه شما خودتان مؤمن نبودید تقصیر ما چیست ما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین و ما هیچ گونه بر شما نداشتیم بلکه شما خود گروهی سرکش بودید فحق علينا قول ربنا اینا لذائقون پس فرمان پروردگار من بر ما ثابت شد البته ما چشنده از آب خواهیم بود فا اغویناکم اینکم غاوین. پس شما را گمراه کردیم بیگمان گمان ما نیز خود گمراه بودیم فانهم يومئذ في العذاب مشتركون پس مسلمان در آن روز همه آنها در عذاب شریک خواهند بود. ان كذلك نفعل بالمجرمين بیشک ما با مجرمان اینگونه رفتار رفتار می‌کنیم. انهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون آنها در دنیا چنان بودند که چون به آنها گفته میشد معبودی به حق جز الله نیست سرکشی و تکبر میکردند و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون و می گفتند آیا ما معبودان من را به خاطر سخن شاعری دیوان رها کنیم بل جاء بالحق و صدق المرسلين چوری نیست بلکه پیام بر خدا حق را آورد و پیام پیامبران پیشین را تصدیق کرد انکم لذائق العذاب مسلما شما عذاب دردناک را خواهید چشید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون و جز به آنچه می کردید که ای فرداده نمی شوید عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلص خدا اولائی لهم رزق معلوم که آنها رزخ و روزی معین دارند فواكه وهم مكرمون انواع و آنان گرامی داشتگانند فی جنات نعیم در باغهایی پر نعمت علا سرر متقابلین بر تخت رو روی یک دیگر نشستند یطاف علیهم بكأس من معین گردا گردشان جامی از شراب روان می‌گردانند بیضاء لذت لیش شرابی سفید و لذت بخش برای نوشندگان است لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ندر آن تبحکاری و فساد است و نه آنها از آن شراب مست شوند و عندهم قاصرات الترفيع و نزدشان همسرانی سیاه چشم دید فرو كه تنها به شوهران خود نظر دارند خواهند بود کانهم نبیض گویی آنها بیزهای شتر مرغ در پرده پوشیده اند فاقبل بعضهم علی بعض يتسائلون پس آنها سوال کنان رو به یکدیگر کنند قال قائل منهم اینی کان لی قرین یکی از آنها گوید به راستی من در دنیا همنشینی داشتم یقول <المصدقین> که پیوسته می گفت آیا واقعا آن تو از باور کنندگان هستی اذا متنا و كنا ترابا وعظاما ا لمدينون آیا وقتی که مردیم و خاک و استخانهای پوسیده شدیم زنده می شویم و کیفرمان میدهند قال هل انتم مطلعون او به دوستان بهشتی هشتیش گوید آیا شما می توانید به دوزخیان بنگرید و از او خبری بگیرید فطلع سوائل پس چشم برگرداند و نگریست ناگاه او را در میان دوزختید قالت الله این گوید به خدا سوگند نزدیک بود که مرا به حلاکت افکنی و لولا نعمت ربی لکنتو من المحضرين. و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احزار شدگان دوزخ بودم افما نحن سپس به دوستان بهشتی خود گوید آیا ما هرگز نمی میریم و در بهشت جاودان هستیم الا موتتن الاولا و ما نحن بمعذبین جز همان مرگ نخستین خود دیگر مرگی به سراغ من نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد این هذا له الفوز العظیم بیگمان این همان کامیابی بزرگ است ل مثل هذا عمل العاملون آری. عمل کنندگان باید برای چنین پاداشی عمل کنند اذلک خیر آیا برای پذیرایی این نعمتهای بهشتی بهتر است یا درخت زقوم؟ اننا جعلناها ما آن را ابتلایی برای ستمکاران قرار دادیم إنها شجره تخرج في أصل الجحيم برأستی آن درختی است كه از قعر جهنم میروید طلعها كانه رؤوس الشياطين شكوف اش همانند سرهاي شياطين است فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون پس آنها از آن میخورند و شكمها را از آن پر می کنند ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم آنگاه بر روی آن آمیزهای از آب گرم و سوزان دارند ثم انما الجحيم سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است انهم الفؤابهم ضا یگمان آنها نیاکان خود را گمراه یافتند فهم علی آثارهم یهرعون پس اینها در دنبال آنان شتابان می روند. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین و به راستی پیش از آنها بیشتر پیشینیان نیان گمراه شدند و لقد ارسلنا فیهم منذرین و به تحقیق ما هشدار دهندگانی در میان آنها فرستادیم فانظر كيف كان عاقبت المنذرین پس بینگر عاقبت هشدار یافتگان چگونه بود؟ إلا عبده المخلصی مگر بندگان مخلص خدا ولا قاد دن نحون فلا نعمل و یقنا نخ ما را نداداد پس ما چه خوب اجابت کننده ای هستیم. و نجیناه و اهله من الكرب العظيم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم و جعلنا ذریته هم الباقین و تنها فرزندانش را باقی گذاشتیم و عليه في فی الاخرین و برای او در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم سلامٌ على نوح في العالمين. در میان جهانیان سلام بر نوح باد اِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ بیگمان ما اینگونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. اینه من عبادنا المؤمنین. یقینا او از بندگان مؤمن ما بود. ثم اغرقنا الآخرين. آنگاه دیگران را غرق کردیم. وان من شیعته لابراهیم و همانا ابراهیم از پیروان او بود اذ جاء ربه بقلب سلیم چون با قلب سلیم خالی از شرک و شک و شهوت به پیشگاه پروردگارش آمد قال لابيه وقومه ماذا تعبدون چون به پدر و قومش گفت چه چیزی را می‌پرستید ايف كن دون الله تريد ايا به جای خدا معبودهای دروغین می‌خواهید فما ظنكم بی العالمین پس شما نسبت به پروردگار جهانیان چه گمان می برید فنظر نظرتا فی النجوم پس ابراهیم یک نگاه به ستارگان نگریست فقال اینی سقیم آنگاه گفت من بیمارم و با شما به جشن نمی آیم فتولوا پس آنها پشت کنان از او دور شدند و رفتند فرأ الى فقال تأكلون آنگاه پنهانی نزد معبودانشان رفت و گفت آیا چیزی نمی خورید ما لکم لا تنطقون شما را چه شده است که سخن نمی گویید فراغ علیهم ضربا بالیمین پس به سوی آنان روی آورد و ضربعی محکم با دست راست بر برانها زد و به جز بط بزرگ همه بط را در هم شکست فَأَقْبَلُونَ إِلَيْهِ يَزِفُونَ پس آنها شتابان به سوی او روی آوردند قال اتعبدون ما تنحتون. ابراهیم گفت آیا چیزی را می‌پرستید که خود تراشیده اید خلقكم خَلَقَكُمْ وَمَا تعملون. در حالی که خداوند شما را و آنچه را که انجام می دهید و میسازید آفریده است بودپرستان گفتند بنای بلندی برایش بسازید و او را در خرمن آتش بیفکنید فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين پس آنها در حق او نیرنگ و مکر ورزیدند و ما آنها را مغلوب و پست ساختیم و آتش به فرمان خدا سرد شد او قال اني ذاهب الى ربي سيهدي و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم میروم. او مرا هدایت خواهد کرد ربی هبلی من الصالحین پروردگارا به من فرزندی از صالحان عطا فرما فبشرناه بغلام حلیم ما او را به تولد پسری برد بار بشارت دادیم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 پس هنگامی که فرزندش با او به سن سعی و کوشش رسید گفت ای فرزندم من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم ببین تو چه نظر داری گفت پدرم به آنچه مأمور شده ای عمل کن اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت فلم اسلم پس چون هر دو تسلیم شدند و ابراهیم او را به پیشانی برزمین افکند و نادیناه ایا ابراهیم ای و او را ندا دادیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين یقینا خواب خیش را تحقق بخشیدی بدون شک ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم این هذا لهو البلا مسلما این خواب آزمایشی آشکار بود و فدایناهو بذبح عظیم و او را به ذبح بزرگی فدا دادیم و ترکنا علیه فی الاخرین و برای او در میان های بعد نام نیک بر جای نهادیم سلام على سلام بر ابراهیم کذالک نجزی المحسنین این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم إنه من عبادنا المؤمنین بی گمان او از بندگان مؤمن ما بود و بشّرناه با اسحاق من الصالحین و او را به تولد اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریته ما محسن و ظالم لنفسه مبین و ما بر او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی نیکوکار بودند و افرادی آشکار بر خود ستم کردند ولقد لقد مننا على موسى و و به راستی ما بر موسا و هارون منت نهادیم و نجیناهما و قومهما من الكرب العظيم و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم و نصرناهم فکانوهم الغالبین و یاریشان کردیم پس آنان پیروز شدند و الكتاب المستبین و به آن دو کتاب روشنگر دادیم و هدیناهما الصراط المستقیم و آن دو را به راه راست هدایت کردیم و ترکنا علیهما فی الآخری و برای آنان در میان امت های بعد نامنیک باقی گذاشتیم. سلامٌ, سلام بر موسا و هارون. سلام بر و هارون. بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. إنهما من عبادنا المؤمنین یقینا آن دو از بندگان مؤمن ما بودند وإن الیاس لمن المرسلین و بیگمان الیاس از رسولان ما بود القال لقومه الا تتقون چون به قومش گفت آیا پرهیزکاری گاری کنید اتدعون بعل و تذرون احسن الخالقین آیا بت بل را می خانید و بهترین آفرینندگان را رها می کنید الله ربكم و رب آبائكم الأولين. الله که پروردگار شما و پروردگار نیاکان نخستین شماست. فكذبوه فإنهم لمخبرون. پس آنها او را تکذیب کردند و یقینا همه آنان به جهنم احزار خواهند شد. الا عباد الله المخلصین مگر بندگان مخلص خدا و ترکنا عليه في الاخرین و برای او در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم. سلام على ياسين سلام بر آل ياسين ان كذلك نجزي المحسنين ما این گونه را پاداش می‌دهیم انه من عبادنا المؤمنين بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود و ان لوط من المرسلین و یقینا لوت از رسولان ما بود اذ نجیناه و اهله اجمعین هنگامی که او و خانواده اش را همگی نجات دادیم إلا عجوزا في الغابرين مگر پیرزنیک از باقی ماندگان بود ثم مرنا الاخرين سپس دیگران را هلاک کردیم وانکم لتمرون عليهم مصبحين و شما پیوسته صبح گاهان بر بیران های شهر شهرهای آنان میگذرید و باللیل افلا تعقلون و همچنین شام گاهان آیا نمی اندیشید و این یونس من و یقینا یونس از رسولان ما بود الابقى الى الفلك المشحون هنگامی به کشتی پر از مسافر و بار گریخت فساهم فكان من المدحضين پس اهل کشتی قرعه زدند پس قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد فالتقمه الحوت وهو مليم انگاه ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که او سزاوار نکوهش بود فلولا انه کان من المسبحین پس اگر او از تسبیح کنندگان نبود للبث فی بطنه الى یوم یبعثون یقیناً تا روزی که مردم برانگیخته میشوند در شکمش باقی میماند فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيم پس او را به سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم در حالی که او بیمار بود وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً و درخت کدوئی بر فراز او رویاندیم تا زیر سایه آن آرام بگیرد و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون و او را به سوی یک هزار نفر از قومش یا بیشتر فرستادیم فآمنوا فمتعناهم لحن پس آنها ایمان آوردند بنابراین تا مدتی آنان را از نعمتهای زندگی بهرهمند ساختیم فاستفتهم أل ربك البنات ولهم البنون پس ای پیامبر از آنان بپرس آیا دختران از آن پروردگارت است و پسران از آن آنهاست ام آیا ما فرشتگان را مؤنس آفریدیم و آنها حاضر بودند علا انهم من افکیهم لیقولون آگاه باش بیگمان آنها از روی تهمت و دروگویشان است که میگویند. من افکیهم لیقولون ولد الله و لکذبون خداوند فرزندی زاده است و یقیناً آنها دروغگو هستند اصطاف البنات علی البنین آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داد؟ ما لكم کیف تحکمون؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکمی کنید؟ فلا تذكرون آیا نمي اندیشید ام لکم سلطان مبین یا شما بر ادعای خود دلیل روشنی دارید اتو بکتابکم ان کنتم صادقین پس اگر راست گویید کتابتان را بیاورید و جعلو بینه و بین الجنت نسبا ولقد علمت الجنة اینهم لمحضرون و آنها میان او و جنیان نسب و خیشاوندی قرار دادند در حالی که جنیان به خوبی می دانند که آنان احزار خواهند شد سبحان الله عما یصفون خداوند منزه هست از آنچه توصیف می إلا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر بندگان مخلص خدا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ پس شما مشرکان و آنچه میپرستید ما انتم علیه بفاتنین هرگز نمیتوانید بر پرستش آن بطخا کسی را گمراه کنید الا من هو صال الجحیم مگر کسی که راهی آتش جهنم باشد وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ فرشتگان گفتند و هیچ کس از ما نیست مگر آن جایگاه و مقام معلومی دارد وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُ و همانا ما برای اطاعت فرمان خداوند به صف استاده ایم و بیگمان المسبحون و بی گمان ما تسبیح گویان او هستیم و این کانو لیقولون و کافران پیوسته می گفتند لو أن عندنا ذكرا من الاولین، اگر نزد ما کتابی از کتاب های پیشینیان می بود لکننا عباد الله المخلصین مسلما ما از بندگان مخلص خداوند می شدیم فکفروا به فسوف یعلمون پس هنگامی که پیامبر برای آنها قرآن آورد آنها به آن قرآن کافر شدند و به زودی خواهند دانست ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین و به راستی بعده ما برای بندگان فرستاده ما از پیش صادر شده است اننهم لهم المنصورون که هر آینه آنها یاری شدهگانند و ان دنا لهم الغالبون و بیگمان گمان لشکر ما پیروزند فتول عنهم حین. پس ای پیامبر تا مدتی از آنها روی بگردان و فسوف با آنها را ببین پس آنها نیز نتیجه کردار خود را به زودی خواهند دید آیا آنها برای دیدن عذاب ما شتاب دارند؟ فاذا فا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین پس چون عذاب بر آستانی خانههایشان فرود آید هشدار یافتگان چه صبح گاه بدی خواهند داشت وتول عنهم حتی حن و تا مدتی از آنها روی بگردان و ابصر فسوف انها را ببین پس آنها نیز به زودی خواهند دید سبحان ربك رب العزه عما يصفون. پاک و منزه است پروردگار تو پروردگار عزت از آنچه مشرکان توصیف می کنند و سلام علی المرسلین و سلام بر رسولان و لله رب العالمين. و سپاس و ستایش مخصوص است که پروردگار جهانیان است بسم الله الرحمن الرحيم صاد و القرآن ذی الذکر صاد که دارای پند و است بل الذين كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ بلکه کسانی که کافر شدند در سرکشی و اختلافند کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا مناص چه بسیار نسل هایی را که پیش از آنها هلاك کردیم پس هنگام نزول عذاب فریاد می زدند اما آن زمان وقت نجات نبود وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب فانها بشغف آمدند که پیامبر هشدار دهنده ای از میان خودشان به سویشان آمده است و کافران گفتند این جادوگری بسیار دروغگوست اجعل الالهه الىهم واحدا ان هذا لشيء آیا همه معبودان را یک معبود قرار داده است بیگمان این چیز عجیبی است وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشیء یراد و بزرگان و اشرافشان بهراه افتادند و گفتند بروید و بر پرستش خدایانتان پایدار باشید بیگمان این دعوت چیزی است خواسته شده که شما را گمراه کنند. ما به في الاخره ان هذا ما هرگز این چون این سخنی در آینه با پسین نشینیده این، این جز دروغ چیزی نیست. أنزل علیه الذكر من بیننا بل هم فی شك من ذكری بل لما یذوقوا عذاب آیا از میان همهٔ ما قرآان بر او نازل شده است در حقیقت چنین نیست که آنها میگویند بلکه آنها در وحی و قرآن من تردید دارند بلکه هنوز عذاب را نچشیده اند ام عندهم خزائن رحمه ربك یا آنکه رحمت پروردگار پیروزمند بخشنده نزد آنهاست اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ یا فرمان روای آسمان ها و زمین به آنچه میان آندوست از آن آنهاست پس اگر چونین است با ریسمان و هر وسیل ای دیگر به آسمان بالا روند جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب اینها لشکر شکست خورده ای از احزاب هستند کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الأوتاد. پیش از انها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب میخها و سپاه نیز پیام بران ما را تکذیب کردند و نیز و قوم لوت و اصحاب الایکه اولائیک الاحزاب و نیز سمود و قوم لوت و اصحاب ایکه اینها احزاب و گروههایی بودند که پیام را تقزیب کردند این كل الا کذب فحق عقاب هر یک از اینها بودند که پیام را تقزیب کردند پس عقوبت من تحقق یافت إلا صيحة واحدة ما لها من فواق و اینها جزبانگی سهمناک را انتظار نمیکشند کشند که هیچ مهلت بازگشتی ندارد وقالوا قالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب و آنها گفتند پروردگارا بحری ما را از عذاب پیش از فرار سیدن روز حساب به ما بده اصبر على ما یقولون و اذكر عبدنا داود ذا الاید انه اواب بر آنچه میگویند صبر کن و بنده ما داوود صاحب نیرو و قوت را یاد آور بیگمان او بسیار رجوع کننده بود اینا سخرن الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق همانا ما ها را با او مسخر برام کردیم که شامگاهان و صبحگاهان با او تسبیح می گفتند و پرندگان نیز مسخر او کردیم که گرد می آمدند همه اینها فرمانبردار و بازگشت کننده به سوی او بودند و ملكه ملکه و وفصل و الخطاب و فرمان او را استوار کردیم و به او حکمت و سخنان فسیح عطا کردیم و هل اتاک الخصم اذ تسور المحراب و آیا خبر شاکیان؟ هنگامی که از دیوار عبادتگاه داوود بالا رفتند به تو رسیده است اذ دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فحکم بیننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط چون بر داوود وارد شدند پس او از آنها وحشت کرد آنها گفتند نترس. دو نفر شاکی هستیم که یکی به دیگران ستم کرده است پس بین ما به حق داوری کن و ستم نکن و ما را به راه راست راه کن این هذا اخیله تسعون و تسعون نعجتا ولی <متصفی> نعجت فقال اکفل فقال اکفلنی ها فی بیگمان این برادر من است او نود میش دارد و من یک میش دارم پس او میگوید آن یک میش را به من باگذار و در سخن بر من غلبه کرده است قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك که الان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 لما فتنناه ربه و داود گفت به راستی او با درخواست یک نیشه تو که را به میشهایش بیفزاید بر تو ستم کرده است و البته بسیاری از شریکان به یک دیگر ستم میکنند مگر کسانی که ایمان اند و کارهای شایسته انجام داده اند و اینان نیز اندک هستند و داوود دانست که ما او را آزموده ایم پس از پروردگارش آمرزش خواست و فروتنانه به سجده افتاد و به سوی خدا رجوع کرد فغفرنا له ذلك و این له عندنا لزلف و حسن ما پس ما او را بخشیدیم و بیگمان برای او نزد ما قدر و مقامی بالا و بازگشت نیکوست. يا داوود اننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع, الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ای داوود ما تو را در زمین خلیف قرار دادیم پس به حق در میان مردم داوری کن و از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه می بیگمان کسانی که از راه خدا گمراه میشوند به خاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند عذاب شدیدی در پیش دارند وما ما خلقن السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفرو فویل للذین کفرو من النار ما آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست بیهوده نیافرید این این گمان است که کافر شدند پس وای بر کسانی که کافر شدند از آتش دوزخ ام نجعل الذين آمنوا و الصالحات كالمفسدين فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار. آیا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمین قرار می آیا پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار می دهیم کتاب انزلناه ایلیک مبارک لیت دبر آیاته ولیت ذکر اولو الالباب پربرکت که آن را بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند و خیرتمندان پند گیرند و وهبنا لداود وسلیمان نعم العبد انه اولواب و ما سليمان را به داوود عطا کردیم چه بنده خوبی بیگمان او بسیار رجوع کننده بود از عرض عليه بالعشی الصافنات الجياد بیاد بیاور چون اصر گاهان اسبان چاب و که را بر او عرض شد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب پس گفت من این اسبان را به خاطر فرمان پروردگارم دوست دارم و پیوسته به آنها نگاه میکرد تا از دیدگانش پنهان شدند ردوها فطفق مسحا بالسوق والاعناق و الاعماق گفت آن اسبان را نزد من بازگردانید. سپس به ساقها و گردنهای آنها دست کشید و نوازش کرد وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ وَبِرَاسْتِ مَا سُلَيْمَانَ را آزموديم و بر تخت او جسدي افکنديم سپس او رو به درگاه خداوند آورد و توبه کرد قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب پروردگارا مرا ببخش و به بب من فرمانروایی عطا فرما که پس از من کسی را سزاوار نباشد بیگمان تو بخشاینده ای له الریح تجری اصاب. پس ما باد را برای او مسخر کردیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند هر کجا می‌خواست برود والشاقين كل بنائغ و نیز دیوان را هر بنا و غواسي از آنها برای او مسخر کردیم وآخرين مقروانين في الأصف. و گروه دیگری از دیوان را که همه در قل و زنجیر بودند برایش مسخر کردیم. هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب این عطای ماست پس به هر کس ببخش و یا نگهدار، حسابی بر تو نیست وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبَ و برای او نزد ما قرد به با مقامی بالا و با بازگشت نیکوست وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُوبَ اِذْ نَادَ رَبَّهُ اَن و به یاد بیاور بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را نداداد که همانا شیطان به من رنج و عذاب رسانده است ارکند برجلک هذا مغتسل بارد و شراب به او فرمان دادیم پای خود را بر زمین بکوب چشم ای می جوشد این چشم آبی خنک برای شست و شوب و آشامیدنی است و وهبنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ و خان بادی آش و حماین دیآنان حمراهیشان را بأو بخشیدیم. که رحمتی از سوی ما و اندرزی برای خردمندان باشد و خذ بيديك ضرفا فضرب به ولا تحنث ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب و به او فرمان دادیم دستی از شاخه های باریک را برگیر پس با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشکن بیگمان ما او را شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی که بسیار رجوع کننده بود و عبادنا ابراهیم و اصحاق و یعقوب اولی والابصار به ای پیامبر به یادآور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را صاحبان دستهای توانمند و های بینا ایننا اخلسناهم بخالصت ذکر الذکر ما آنها را با خصلت ای که آن یاد سرای آخرت بود خالص گرداندیم و انهم عندنا لمن المصطفین الاخيار و یقینا آنها نزد ما از برگزیدگان نیکان بودند و اذکر اسماعیل و اليسع الكفل و من الاخیار و آور اسماعیل و یسع و ذا الكفل را که همگی از نیکان بودند هذا ذكر و این للمتقین لحسن مآب این قرآن پندی است و بیگمان برای پرهیزگاران منزلگاهی نیکوست جنات عدن مفتحت لهم الابواب باقهای جاویدان بهشتی که درهایش برای آنان باز است متکئین فیها یدعون فیها و در آنجا تکیه زده اند و در آن میوه فراوان و نوشیدنی را می و قاصرات الاضرف اترا و نزد آنان همسرانی فروهشت چشم همسال است هذا ما تودون لیوم الحساب این است چیزهایی که برای روز حساب به شما وعده داده می شود این هذا لرزقنا ما له من بیگمان این روزی ماست که آن را هیچ پایانی نیست هذا. و این لطاغین لشر و این پاداش پرهیزگاران است و بیگمان برای سرکشان بدترین بازگشت هاست جهنم یصلونها فبئس المهاد جهنم که در آن وارد میشوند پس چه بد است؟ هذا این عذاب آب جوشان و چرک و خونابه است که باید آن را بچشند و آخر من از ازواج و کیفرهای دیگر همانند آن به انوا اگوناگون دارنده خاوجوم مقطحمون معکله مرحبا بهیم این هم فالون به سرداران آنها گفته می شود این گروهی است که با شما به جهنم وارد می شود. آنها میگویند خوش آمد. و گشایش بر آنها مباد، بیگمان آنها داخل شدگان به آتش هستند قالو بل انتم لا مرحبا بكم. انتم قدمتموه لنا فبئس القرار پیروان گویند، بلکه شما را خوش آمد مباد، که این عذاب را پیش پیش شما برای ما فراهم کردی اید پس چه بد قرارگاهی است قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار سپس گویند پروردگارا هر کس که این عذاب را پیش آپیش برای ما فراهم کرده است پس عذابی دوچندان در آتش برو بیفزا وقالوا ما لنا لا نران جالا کننا نعدهم من الاشرار و گویاند ما را چه شده است مردمانی را که ما آنها را اشرار بیشمردیم در جهنم نمی بینیم. اتخذناهم زاغت آیا آنها را به مسخره گرفتیم یا اینکه از نظرها دور مانده‌اند بیگمان این مخاسمه و گفتگوی دوزخیان حق و واقعیت است قل إنما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار ای پیامبر بگو من تنها یک هشدار دهنده ام به هیچ معبودی به حق جز خداوند تای قهار نیست رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن دو است آن پیروزمند آمرزنده قل هو نبع عظیم ای پیام بگو این خبری بزرگ است انتم عنه معرضون که شما از آن روی گردانید ما کان لی من علم بالملع اعلی از یختصمون من از ساکنان عالم بالا چون درباره آفرینش آدم با یکدیگر جدال میکردند خبری ندارم ایو حائل الا ایلا انما نذیر مبین به من وحی نمی شود. مگر اینکه من هشدار دهنده ای آشکار هستم اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طین و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت بی تردید من بشری را از گلی آفرینم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ پس هنگامی که درستش کردم و از روح خود در آن دمیدم برای او سجد کنان بیفتید فسجد الْمَلَائِكَتُ كلهم أَجْمَعُونَ پس فرشتگان همگی یک بار چه سجده کردند الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدای استكبرت ام كنت من العالين خداوند فرمود ای ابلیس چه چیز مانع تو شد از آنکه برای آنچه من با دو دست خود آفرید ام سجده کنی آیا تکبر ورزیدی یا از بلند پایگان هستی <سؤال> <سؤال> قال انا خير منه هو من نار وخلقته من طين گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی قال فاخرج منها فانك راجيم <سؤال> فرمود پس از اینجا بیرون شو که تو رانده شدی و این علیک إلى الیوم الدین و همانا لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود قال رب إلى يوم یبعثون ابلیس گفت پروردگارا پس مرا تا روزی که دوباره برانگیخته می شوند مخلده خداوند فرمود همانا تو از مهلت یافتگانی المعلوم تا آن روز و زمان معین قال فبعزتك لا اغوينهم ابلیس گفت پس به عزتت سوگند که همه آنها را گمراه خواهم کرد الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها قال فالحق والحق خداوند فرمود پس این سخن حق است و حق را میگویم لا ام جهنم منك ومن من تبعك منهم یقینا جهنم را از تو و از آنان که از تو بیان کنند پرخواهم کرد ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ای پیامبر بگو من بر رساندن این دین هیچ مزدی از شما درخواست نمی کنم و من از متکلفان نیستم إن هو إلا ذكر للعالمن این قرآان جز پنز برای جهانیان نیست ولتعلمن نبأه بعد فقط ان خبر صدق آن را بعد از مدتی خواهید دانست بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بیگمان ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم. پس خدا را پرستش کن و دین را برای او خالص گردان الا لله الدين الخالص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 ان الله یحكم بینهم فی هم فیه اختلافون این الله لا یهدي من هو كاذب کفر آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و کسانی که به جای او معبودان گرفتند که بیگمان خداوند روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری میکند. خداوند آن کسی که دروغ گوی ناسپاس است هدایت نمیکند. لو اراد الله ان یتخذ ولدا لصطفا مما یخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار اگر خداوند میخواست فرزندی بگیرد مسلما از میان آنچه میآفرینت چیزی را که میخواست برمیگزید. او پاک و منزه است، او خداوندی یک قهار است.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 هو الغفار. آسمان ها و زمین را به حق آفرید شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب می پیچد و خورشید و ماه را مسخر و رام گردانید هر کدام تا زمانی معین در حرکتند آگاه باشید که او پیروزمند آمرزنده است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 او شما را از یک تن آفرید سپس همسرش را از آن پدید آورد و از چهار پایان برای شما هشت جفت فرو فرستاد و شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در تاریکی های سگانه می آفریند. این خداوند پروردگار شماست که فرمان از آن اوست و جز او معبودی به حق نیست پس چگونه از حق منصرف و روی گردان می شوید این تکفرو فإن الله غنی عنكم ولا يرضى لعباده الكفر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 اگر ناسپاسی کنید پس بدانید که خداوند از شما بین نیاز است و هرگز ناسپاسی را برای بندگانش نمیپسندد و اگر شکر او را به جای آورید آن را برای شما میپسندد. هیچ کس بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد پس باز گشتتان به سوی پروردگارتان است آنگاه شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند یقینا او به راز دلها آگاه است و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمدع بی قلیلا من اصحاب به هنگامی که به انسان رنج و زیانی برسد پروردگارش را می‌خواند و به سوی او باز می گردد. پس هنگامی که نعمتی از سوی خود به او بخشید آنچه را که از پیش برای آن دعا می کرد فراموش می کند و برای خداوند همتایانی قرار می دهد تا مردم را از راه او گمراه کند بگو اندکی از کفرت در دنیا بهرمند شو بیشک تو از دوزخیان خواهی بود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 اینما اولو الالباب آیا این مشرک بهتر است یا کسی که در ساعت شب در حال سجده و قیام به عبادت مشغول است و از عذاب آخرت بیمناک است و به رحمت پروردگارش امیدوار است بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند یکسان هستند؟ تنها خیردمندان پند می‌پذیرند قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه واضل الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ای پیامبر بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید از پروردگارتان بترسید برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکوست و اگر در شکنجه و آزار مشکان بودید هجرت کنید که زمین خدا وسیع است جز این نیست که صابران پاداش خود را بیشمار و, و تمام دریافت می‌دارند. قل اینی أن ان الله مخلصا له الدین بگو من مأمور شده ام که خدا را پرستش کنم و دینم را برای او خالش گردانم و امرتو لأن اكون اول المسلمین و مأمور شد ام که نخستین مسلمانان باشم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم بگو همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ میترسم قل الله اعبد مخلصا له دینی ای پیام بر بگو من خدا را می‌پرستم در حالی که دینم را برای او خالص میگردانم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ذلك هو الخسران پس شما هرچرا که میخواهید به جای او پرستش کنید بگو بیگمان زیان کاران واقعی کسانیند که خود و خاندانشان را در روز قیامت از دست داده اند آگاه باشید این همان زیان آشکار است فقهمظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك یخوف الله به عباده یا عباد فاتقون برای آنها از بالای سرشان صایبانهایی از آتش و در زیر پایشان نیز صایبانهایی است این چیزیست که خداوند با آن بندگانش را میترساند ای بندگان من از من بترسید والذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها وأنابوا الى الله لهم البشرا فبشر عباد و کسانی که از تاغوط اجتناب كردند از آنکه آن را عبادت کنند و رو به سوی خدا آوردند برای آنان بشارت است پس بندگان مرا بشارت ده <تصفيق> الّذین یستمیعون القول فیتبعون احسنه اولائک الذین هداهم الله و هم اولو همان کسانی که سخنها را می پس از نیگوترین آن پیروی می کنند آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است و آنها خردمندانند افمن حق علیه کلمت العذاب افانتتون من النار. آیا تو می توانی کسی که فرمان عذاب بر او تحقق یافته است را نجات دهی؟ آیا تو می توانی کسی که در آتش است نجات دهی؟ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبَنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادِ لاکن برای کسانی که از پروردگارشان ترسیدند قرفهایی در بهشت است که بر فراز آنها قرفهای دیگر بنا شده است و از زیر آنها نهرها جاری است این وعده خداوند است و خداوند وعده خود را خلاف نمی کند، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ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 آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی را نازل کرد پس آن را به صورت چشمه در زمین به جریان درآورد. سپس با آن کشت و زرعی که رنگ های گوناگون دارد بیرون می آنگاه آنگا خوشک می شود و آن را زرد می بینی. سپس آن را در هم می بیگمان در این عمر پندی برای خردمندان است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 آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای پذیرش اسلام گشوده است پس او از سوی پروردگارش بر نور و روشنایی است همچون سخت دلان است پس وای بر آنان که دلهایشان در برابر ذکر خدا سخت است آنان در گمراهی آشکار هستند الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذالك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها خداوند بهترین سخن را نازل کرده است کتابی که آیاتش متشابه و مکرر است که از شنیدن آن پوست کسانی که از پرورد گارشان می ترسند می آنگاه پوست و دلهایشان با یاد خدا نرم می و آرام میگیرد. این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می کند. و هر کس را که گمراه سازد پس برای او هیچ هدایت کننده ای نخواهد بود فَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ آیا کسی که با چهرهش سختی عذاب روز قیامت را از خود دور میسازد همانند بهشتیان هستند؟ و به ستمکاران گفته می شود بچشید کیفر آنچه را که به دست می آورید کذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون کسانی که پیش از آنها بودند نیز آیات ما را تقذیب کردند پس عذاب الهی از جایی که نمیدانستند به سراغشان آمد فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون پس خداوند طعم خاری را در زندگی دنیا به آنها چشاند و مسلما عذاب آخرت بزرگتر و سختتر است اگر میدانستند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون و به راستی ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زده ایم شاید که آنان پند گیرند قرآن عربی غیر ذیع و علهم یتقون قرآن عربی بی هیچ انحراف شاید آنان تقوا پیشه کنند ضرب الله مثلا رجلا رجلا هل مثلا لا خداوند مردی مملوک را فِيهِ شُرَكَاءُ که در بردگی او است که پیوسته با هم اختلاف دارند و مردی مملوک که تنها تسلیم یک شخص است آیا این دو در وصب یکسانند همد و ستایش مخصوص خداوند است بلکه بیشتر آنها نمی دانند اینکه و اینه هم ای پیامبر قطعا تو خواهی مرد و آنها نیز خواهند مرد ثم نكم وم القیم عند ربكم تختصمون سپس بی گمان شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاسمه و جدال می‌کنید.